جلسه پونزه قبو عیده فقصی و سمو از سی آموز شاده علی مورزه علیه السلام نوح آزر هزار بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا عبدالقاس محمد و علیه اهلویت تاهرین المعصومین سی مبقیت الله في العرزین روحی و عرباخ العالمین له الفدا و تاکل بر خدای متعال و توسل به پیامبر گرامی و اهل بیت اطهار علیهم السلام بحث رو آغاز کنیم. بحث قاعده حفظ نظام بحث حرمت اختلال نظام رو مرور کردیم بحث زیادی باز داره اما میخوایم اون رو تکمیل کنیم دیگه از بعضی موارد دیگه باز خواهیم ما ای ما به طور کلی قبلا ارز کردیم که قواعد بر دو گونه هستند قواعد عام و شامل قواعد شامل برای کل فقه هست مثل لازره رو دا حرج و سایر موارد بعضیش هم قواعد عام میست که میتوانه درس مثلا اگر فکر و چار ساعت معامله با خدا معامله با خلق معامله با خود و معامله با طبیعت در نظر بگیریم ممکنه قواعدی در نظر بگیریم مناسب اینها باشه مثلا قواعد اختصاصی داریم طبیعتاً در قواعد شامل و آم ای، که یک آشنایی ضروری باید با اونها باشه ما نگاه تطبیقی باید داشته باشیم یکی از موارد بسیار مهم که میتونه در کل فقه مدنی نظر قرار بگیره و در مباحث فقه و کاربرد خیلی زیادی داره بحث قاعده تقدیم اهم بر مهم هست که در فضای اقواب مختلف همه اینها قابل پیگیری است اما در فقه و سیاسه اهمیت و کاربرد ویژه و فراوانی داره خب من اینجا فقط اشاره به بعض از مفاهیم بکنم اما بعدا با اونها بیشتر سرکار خواهیم داشت اه و اه یه مقید از ذکر بعضی از روایات من شروع بکنم در مورد تقدیم مهم بر غیر مهم یا تقدیم بر از روایات همون مهم بعد مفاهیم رو به تناسب باز بیشتر سر کار خواهیم میاد. یه بحث ما فاسد و عصد داریم، تغییر میشه به دفعه حسب به فاسد. یک تعبیر اهم داریم و یک تعبیر مهم تقدیم اهم بر مهم. تقدیم صالح بر غیر صالح، تقدیم اصلح بر صالح. این مفاهیم رو داریم. در اینجا من اشاره بکنم که صالح و اصله در دو وادی به کار میره یا فاسد و افسدی یکی ما بحث اصلیمون در مورد فعل افعالی که صالح باشند افعالی که ناسالح باشند افعالی باشند که فاسدند و افعالی, افعالی که افسدند اما اون بحث مشابه که در مورد ویژگی های افراد هست اون یه بحث مستقلیست که میگیم فرد افسد رو ما کنار بگذاریم در ناچاری مثلا فرض بگیریم بریم سراغ فاسد مثلا در بحث انتخابات یا در دوران بین فرد صالح و اصلح بریم سراغ اصلح اون یه بحث مستقل دیگه ایه پس فعلا در اینها ما نمیخوایم وارد چیم تعبیر اهم و مهم که گفته میشه با معنای عام مراد ما همه موارد است که با تسامح از اونها ما به عنوان در واقع ساله و اصله فاسد و افسد اینها رو مطرح خواهیم کرد این مفاهیم رو بعدن ابعاد دیگه رو به تناسب قواعد مربوط به اینها در نظر خواهیم گرفت من برای شروع بحث و تورک بحث روایاتی رو مورد اشاره قرار میدم و روایات رو این مقداری کنکاش بکنیم تعمل میکنم یه سری روایاتی که بیانگر تقدیم مهم بر غیر مهم هستن یا تقدیم اهم براد یک روایاتی رو از امام امیر علی علیه السلام میخوانم که جمله قصاری است دوستان خوبه حفظ بکنن و در زندگی به کار ببرن در تبلیغ و در همین موارد کمک میکنه اما در قدم اول خود ما انشاءالله امتصال بکنیم بعد اگر توفیق یار بود به دیگران هم این رو نقل خواهیم کرد و نقل خواهید کرد میفرمایم منش تقلب به غیر به غیر المهم رایه ال اهم من اشتغلب به غیر المهم رایه ال اهم در نسخه هم یک قدم داره قد رایه اهم این رو من در کتب مختلف بیدیو کردم در اویون ال حکم و المبائز لیسی واسطی اونجا هست صفحه چهارسدش هست مرهوم آمدی در قرار ال حکم داره صفحه 626 در تصنیف قرار رم داره, داره که صفحه 477 مرحوم آقا جمال خانساری در شرحی که بر قرار رو دارن جلد پنج صفحه 330 هم این رو دارن ای خب منش به غیر المهم رای ال اهم محتواش چی ادقل می توانیم در تفسیر و فهم این روایت دست کم دو برداشت رو ارائه کنیم که هر دو مبتنی بر این که اهم بر مهم مقدم می و تقدیم اهم بر مهم امری قابل قبول نزد عقل و اغلاست و این دو برداشت مبتنی بر اینه که در واقع حضرت این پیشفرض رو دارند که این مقوله امری اقلی و است. برداشته اولینه که ببینید اینجا الان دو محور محل اشاره قرار گرفته مهم و اهم بباشید غیر مهم و اهم ما اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید بگیم مثلا چی بگیم بگیم کسی که غیر مهم رو مشغول به غیر مهم بشه مهم رو گذاشته کنار و بعد به طریق اولا اهم یه موقع ما میگیم مقایسه میکنیم بین مهم و اهم یه موقع بین غیر مهم و مهم در این روایت نسبتی برقرار شده بین اشتغال به غیر مهم و تضیه اهم این مهم از اینجا کنار گذاشته شده نکتی اساسی اینه پس برداشت اول که در این روایت حضرت خواستن خب به غیر مهم توجه کنند و مخاطب رو از پرداختن به غیر مهم پریز بدن حتی اصلیشون اینه پرهیز دادن از غیر مهم نه بر اساس اون برداشت احتمالی دوم که مثلا بخوا تعاملش با دیگران رو تقویت کنه اما حضرت برفرز این احتمال که میخوان بگن به غیر مهم مشغول اشغول نشد صرفاً به این توصیه ناسهانه بسنده نکرده بلکه یه تأکیدی هم کردن برای تأکید بر پرهیز از اشتغال به غیر مهم یک استدلال زمنی گردن و, و اون چیه؟ این که اشتغال به غیر مهم از مصادیق تزیه اهمه. چرا چون حضرت فرمودن من اشتغل و به غیر المهم زیع الهم. کسی که غیر مهم رو میپرداز مشغول میشه تزیه اهم میکنه. پس معلوم میشه هدف تمرکزه بر غیر مهمه داره پرهیز میدگاه سراغ غیر مهم نرو. اما برای تأکید فرمودن که اگر مشغول غیر مهم بشید تضیعه هم کردی، این برای تأکید باشه این یک احتمال به طور یعنی به تعبیر دیگه حضرت به طور زمینی دو تا قاعده رو مفروض و قابل قبول دارستن نزده عقل و اغلا و به هر دو هم تمثب کردند یکی این قاعده اول این که اشتغال به غیر مهم به جای اشتغال به مهم نادرسته اشتغال به غیر مهم به جای اشتغال به مهم نادرسته قاعده دوفومم این که اشتغال به غیر اهم به جای اشتغال به مهم نادرسته پس در واقع ما مهم رو همیشه با اهم مقایسه می‌کنیم، اه اهم رو با مهم مقایسه می‌کنیم، غیر مهم رو هم به مهم. پس اشتغال به غیر مهم نادرسته و توانه به جای اشتغال به مهم بنشینه. همونطور که اشتغال به غیر اهم نباید صورت بگیره و باید جای اشتغال به اهم قرار بگیره یه اشتغال اهم داریم یه اشتغال به غیر اهم شما باید طبق قاعده دوم باید به اهم مشغول بشی به غیر اهم مشغول نشی پس به طور زمانی این دو قاعده محفوظ شد این دو قاعده که محفوظه ما از این به طور زمانی از این رو باید میفهمیم و میفهمیم که مفروز ماست خب، مفروض حضرته. نکته زریف در شیوه بیان حضرت اینه که در مقام تأکید بر ضرورت پرهیز از اشتغال به غیر مهم این رو مطرح کردند و این رو مصداق اشتغال به غیر اهم هم معرفی کردند. پس ظاهرش این بود متن این بود که کسی که به غیر مهم مشبول میشه زیل اهم یعنی چی؟ یعنی نه این درسته نه اون خب زیل اهم یعنی چی؟ یعنی این که آقا تضییه اهم نادرسته تضییه در مقایسه با چی؟ با غیر اهم دیگه با مثلا مهم یا غیر اهم اینجا جمله اولم میگه که خالصه اشتغال به غیر مهم نادرسته این تفسیر اوله خب آیا این ارزیابی که بخوایم بکنیم این برداشت درسته یا نه؟ میشه بگیم چون این برداشتی با ظاهر روایت ناسازگاری نداره اما یک کمی معنی می‌بره، تعمل می‌خواد، ظهورش چندان در این نیست ببینیشه که اگر اون کلمه قدر رو که یه نسخه پیش از, کتاب ز... پیش از کلمه ز... زیعه آورده این یه نسخه از کتاب اویون الحکم و مواعظ لیسی واسطیه که در کتاب خانه های طول مرشیه به عنوان قدیم نسخم هست در اونجا این قدر رو من دیدم آورده خب اگر این قدر رو ببینیم بیم که این ظهور تقویت میشه خب اما چیزی که این ظهور رو تضعیف میکنه دو نکته. یکی اینکه خود مخاطق میدانه که اشتغال به غیر مهم مختزیه ترگه مهمه و تذکر اون هم معمولا به عنوان سرزنش یا تنبیه فرد خاطی انجام میشه معلومه خودش میدونه که اشتغال به غیر مهم وقتی شما به غیر مهم مشغول میشی مقتضی این یعنی که مهم رو ترک کردی دیگه دیگه گفتن نداره دومین مزعفه اینه که چندان اورفی نیست که تقدیم غیر مهم بر مهم رو ما از مسادیق تقدیم مهم بر اهم بدانیم الان اینجا سراغ غیر مهم رفتن فهمودن من اشتقلم به غیر المهم زعیه ال اهم. نگفته زعیه المهم خب این عرفی نیست به تعدیر حضرت مثلا این رو از مسادیق تضیع اهم بدانیم اما اگر این احتمال رو به پذیریم، مخت... این احتمال مختزینه که حضرت برخلاف عرف تقدیم غیر مهم بر مهم و اشتغال به غیر و مهم رو از مصادیق تقدیم مهم بر اهم و تزیه اهم دانسته باشه، در مجبور نمیشه بگیم این خلاف صد درصد ظهور این روایته اما این موارد یه مقداری این برداشت اول رو این احتمال اول رو تضیف میکنه به عنوان یک برداشت احتمالی ما میتوانیم داشته باشیم اگر احتمال بهتر پیدا نکردیم خب به این تمثلت میکنیم اگر احتمال بهتر پیدا کردیم به اون میپردازیم خب این برداشت اول بود که گفتیم چی؟ که اینجا متضمن دو قاعده باشه و خواستن تمرکز هستشان بر این باشه که آقا به غیر مهم تمت اهتمام نورست اشتغال نداشته باشه برداشت احتمالی دوم خواستن حضرت یه موقع در واقع میگن آقا شما اگر میخواهید رفتار دیگران رو بفهمید من به شما راهنمایی میکنم اگه میخواید دیگران رو ارزیابی بکنی یه موقع پس اون بیان قبلی داشتش به شما میگفت به چی مشغول شو به چی مشغول نشو کدام کار بهتره احتمال دوم میخواد در مورد دیگران یه مقداری فضا سازی بکنه خواستن بفرمایند کسی که کسانی که به غیر مهمی پردازند شما احتیاط کن اونها رو نمیشه خیلی سر اونها بایستاد اونها رو مثلا اگه میخواید به منصبی بلید مگه اصلا میخواید با اونها تعامل بکنین با اونها عشنا باش. شما خیلی موقع من شما این کاره میکنیم یه قاعده به مخ... رفیقمون میدیم میگیم آقا حواست باشه شما مثلا اینجا کلا سرت نره ها از نشان شناسی داریم میکنیم به اون رف... رفیقمون داریم احدیات یاد میدیم یه قواعدی رو بهش آموزش میدیم که ببین روی اینطور آدمان نمیشه حساب باز کنیم اینجا نه اینکه که بخوا... اه... هدفش این باشه که شما به چه کاری خودت بپرداز به چه کاری نپرداز در واقع داره اخبار میده اخبار میکنه از وضعیت عادی انسان ها آدمایی که خیلی خلاصه با کار کارونه میکنن و به غیر مهم میپردازن روشون رو نمیشه حساب کرد اونها در موارد سر بزنگا حتی ممکن موارد اهم رو هم بذارن کنار چرا؟ چون این آدم بین مهم و غیر مهم خلاصه تفکیک قائل نیست عقل و اغلا میگن شما به کار مهم به پرداز غیر مهم رو رها کن این چون روشی نداره پس حواست باشه اگه یه جایی بس مقبوله هم باشه که اهم باشه اون رو میذاره کنار بنابراین افعالشون ظابط و قابل تکیه نیست بنابراین در تضاهم اهم با مهم محت... خب از این وقت چی میفهمیم؟ بر اساس این برداشت احتمالی کسی که افعال شندان آقلانه نیست و سیره رفتارش این گونه است که کارهای غیر مهم رو بر کارهای مهم ترجیح میده قابل احتمال نیست به تعبیر دیگه نمیتوان نسبت به رخداران یه تزمین پیدا کرد برای پایبندشون به قاعده اغلائی یا عقلی که آها باید در تزاهام بین اهم و مهم اهم رو باید مقدم کرد همواره باید نسبت به چون افرادی بیم داشت احتیاط کرد خب این برداشته دو هم. خب در ارزیابی این احتمال باید بگیم که ظهورش این نسبت به اون احتمال اول بیشتره و اون دو ضعفی که ما اشاره کردیم در این نیستش حالا این تقوی برداشت برداشت اینه که این یه مقدار ظهورش بیشتر حالا داره اخبار میکنه زور بدی نداره که شما این کار رو بکن اون کار که نکن بلکه داره خبر میده به دیگران داره به شما یاد میده که خلاصه دیگران جو باش البته از اونم میتوانی چونی نتیجه ممکنه بگیرید و هر دو برداشت احتمالی مهم اینه برای بحث ما هر دو برداشت دارن میگن که تقدیم اهم بر مهم یه قاعده اقلی و اقلاییه و هم پیشفرز حضرت در این روایت چه ما اون احتمال برداشت اول رو بگیریم که داره به شما آموزش رفتار میده چه احتمال دوم رو بگیریم که داره توصیف وضع دیگران رو میکنه احتیاط میخوا به شما یاد بده لزوم تقدیم اهم بر مهم همچنین لزوم تقدیم مهم بر غیر مهم هم مفروض دوم حضرت روایت دوم از حضرت امام اميرالمؤمنین علیه السلام این هست میفرماید من اشتغل بالفذول فاته من مهمه المعمول من اشتغل بالفذول کسی که به امور غیر اصلی و به فذول ها و غیر اصلی میپردازه فاته من مهمه المعمول چیز رو از دست میده که براش مهم بوده و امیدوار بوده به اون برسه معمولش بوده فاطمون مهمهی المعمول اون موارد مهمی رو که انتظار داشته دست میده منبع این هم باز اویون الهکمه ولی موائز محوم لیسی واسطیه صفحه 440 که البته تعبیر مهمهی رو نداره در صفحه 460 هم بازداره روایت رو دو جا برده مرحوم آمدی و آمدی در قرار رول حکم صفحه 627 داره در تصنیف قرار رول حکم هم صفحه 477 مرحوم آقا جمال خانساری هم در شرح قرار رول جلد 5 صفحه 336 هم داره منشتغل بالفنون فاتهم من مهمه المامول اینم یک روایت خب حالا اینا رو دیگه من اون روایت رو به طور نمونه کمی تحلیل کردم اینا یک روایت روایت سوم باز از امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخوام متنش البته طولانیه در بهار الانوار جلد 75 صفحه هفت طولانی فقط مرور میکنم ال انسانو اقلون و صورت فمَن اخته هول اقلو و لازمت خو صوره لام يکن کاملاً انسانی اقلی داره یه صورت ظاهری داره. اگر فمَن اخته هول عقل، اگر اقلش خطا بکنه و ملتازم اون صورت بشه این کامل نخواهد بود. و کانه به منزلت من لا روحفی حالا فمن اخت احول اقل حالا تو ترجمهش ممکنه بگیم که یعنی اینجا خطا میکنه و اقل رو خیلی بهانه میده در مقایسه با صورت و کانه به منزلت من لا روحفی کسی که که روح نداره و من طلب العقل المتعارفم کسی که دنبال عقل متعارفه و شناخته شده است ولی عرف صورت الاصول اگه میخواه اون عقل متعارف رو به دست بیاره باید صورت اصول رو به دست بیاره ولفضول بل ولی عرف صورت الاصول ولفضول پس اینجا حضرت دارن بینه یه سری امور اصلی و اساسی و یه سر امور زائد که اگه باشه بهتره تفکیک میکنم فلیه و من طلب العقل المتعارفم کسی که عقل متعارف رو میخواد باید بین صورت اصول و فضول تفکیر قائل بشه فا اینه کسی را من الناسی یطلبون فضول و یضعون الاصول خیلی از مردم میپردزن به این امور فضول و امور اصلی و اساسی و اصول رو ترک میکنن و رها میکنن فمن احراز الاصل اکتفا بهی ان الفضل هرکس که اون اصل رو به دست بیاره و اون رو احراز بکنه حالا به تعبیر دیگه افراز بکنه این دیگه از اون امور زیادی و فضل ها ولاث بسنده میکنه یک تفا بهی عن اون اصل و اساس رو به دست میاره سه نقطه من یه قسمتش رو حس کردم و اصل الامور ف دین اعتمده علی الصلوات و اجتناب عن کبائر اصل امور خب در امور مختلف اصل و فضول داریم در دین چی چه مواردی اصل این که اعتماد کنه بر نمازها و ترک کبائر کنه و الزم کم لزوم و لاغنا انهو ترفت این شاید الزم و باشه اینجا من متنی که آوردم بلزمه هست اعراب داشته ولی شاید بلزم و لزومم برداشتن می که شاید درست باشه باید بگیم مثلا الزم و لازم ترین اونها لزوم و خالا شاید این براد باشه حالا این طبقه مددی که اردن اولزم ازالکه لزومم مالاغه نا ان هم چیزی که از اون چاره نیست نیاز به اون هست مالاغه نا ان بعد اونایی که چاره جز اونها نیست و نسبت به اونها بی نیازی داریم نسبت به اونها ترفت این خلاصه کنار نذاره و این حرمتهو حل کن و یعنی اگه اینو محروم بشه این که نه حالا اون من برسی نکردم شاید بگیم برای حلاکی درش هست فا این جاوزت و علالفقه ولعبادت فخو والحف اگر بیش از اینها به پردازه به فقه و عبادت و اینها به پردازه اینهای حزیست ادامه داشته من نیوردم در بهار و لمبال جلد 7 و 5 7 روایت چهارم حضرت امیر علیه السلام او در متنش در بازلیسی واسطی اوین الحکم صفحه پونسد و صفحه 800. تصنیف قرر صفحه سیسد آقا جمال خانساری در شرح محقق بار جمال الدین محمد خانساری بر قرار الحکم جلد شش صفحه چارسده پنجا و چارسده پنجا و یک متنینه یستدال لعلا ادبار دولبز یا در قیون الحکم به جای ادبار زبال آرده یستدال لعلا ادبار به عربه برای ادبار دولت ها استدلال میشه به چهار تا و بگیم نشان شناسی میشه با چهار تا از چهار طریق میشه استدلال کرد که این دولت ها زبال پیدا کردن یا ادبار پیدا کردن به عربه تضیی اصول یه عمور اساسی رو تضیی میکنه از بین میبن و زایه میکنن و تمسک و تماسکو یا اگر به عربه بگیریم تضیی اصول و تمسک بلفروع در نسخه تصدیف الحکم و در شرح آقا غرور آمده به جای فرو گفته تمستک بل غرور. خب حالا اگر بلفرو باشه با اون اصول مقابل داره تضیی اصول و تمستک بلفرو و تقدیم الاراضل در یه نسخه تقدم آمده در اویون الحکم و تقدیم الاراضل و تأخیر افاضل این دومه اون دو مورد اول می توانه به افعال بخوره کار تضی اصولی امور اساسی و های اساسی و فرو اونها رو تضیح بکنه ولی فرو رو به چسب چیزایی از دومه یا ها ملف های درجه دو رو بگیره محلف های درجه یک روزهکن حالا اگر فعللم نگیریم. این دو دیگه تقدیم عراضل و تحلیل افاق زل به اون معنای فاسد و افسد شخصی میخوره ویژگی اشخاص این هم به طور زمینی خلاصه یه تم بپرزه حالا من اینا رو دیگه به اون نمونه فقط اولی رو تحلیل کردم حدیث پنجم که ترجیح هواز بحث این معمورت بود امیر الموحین علیه السلام ان این رعی که لاید تسئول کل شیئن ففرق خل المهم ربطه خیلی زیبایه «ان رعی که لاید تسئول کل شیئن ففرق خل المهم ذهن و ظرفیت دل شما و ذهن شما فراغت نمیتوانه برای هر چیزی داشته باشه پس سعی کن امور غیر مهم رو بذاری کنار بلکه اینو خالیش بکنی برای امور مهم و فرق کل مهم خب طبیعتا وقتی اینجور میگه اهم و هم میشه یعنی غیر غیر مهم رو اینجا فقط تصریح کرده به تعبیر مهم منتها و محتوایی که داره میگه آقا هر چیزی نیار بعد میگه که مهم رو بیار یعنی چی نمیخواد بگه که اهم رو بذار کنار مهم ها رو که بیار اینکه عرف که نفسنده این رو یک امر اوقلایس این اینجا که معنیش این نیست که اهم رو بذار کنار ففرق کل مهم قطعا اینجا مراد اینه که لا یتسلق کل شای یعنی مهم ها و غیر مهم ها رو نمیتوانی شما خلاص بهش بپردازی بلکه چی اینو فارغ کنم برای مهم پس پیشفرز این روایت چیه اینی که تقدیم مهم بر غیر مهم درسته و به طریق اولا میشه این هم بگیم به طریق اولا در مقایسه بین اهم و مهم این هم میتوانیم بپذیریم که در واقع با یک قیاس اولویت و فحوای دلیل ما اهم رو هم می توانیم بگیم حضرت می که بر مهم مقدم بشه خب این حدیث اگر در زندگی شخصی ما رایت بشه در زندگی اجتماع ما رایت بشه چقدر تأثیر داره من و شما ممکنه تا فیلم ببینیم فیلم های خیلی خوبی هم باشه خیلی عالی ساخت خیلی عالی اما حالا یه ما به اندازه رفع خستگیه خب حالا رفع خستگی از صبح تا شب مشغول بودید یا برحال حالا مانع دارید کار دیگه نمیشه بکنید بچه ها مشغول میکنن سر ها میکنن حالا زمنش تلویزیون هم روشنه سحنای بدی بعضی فیلم نداره بعضی فیلم هم که تصویرش خوب نیست حالا اونو جدا همین معمولا خب نداره حالا میبینیم یه هم داره. ولی یه موقع نه فراغت داره این اندازه رفع خستگی هم نیست دیگه خیلی بیش از اندازه حالا یکی ممکنه خیلی گرفتار باشه خیلی دیگه اصلا اینقدر فرسوده شده بگیم حالا اف نداره کم بیشتر اما دیگه حالا ما اهم این کارهای غیر مهم رو بچسبیم و کارهای مهم رو ترک کنیم اون روایت اول من اشتغلم به المهم و ال اهم شامل خودمو هم هست اون احتیاطه اگر حتی به خودمو هم عام فرمودن دیگه اگر اخبار بگیریم که ظهورش در اخباره آقا لازمش البته اون روایت لازمش این بود که آقا این رو مهم رو مقدم کن اهم رو مقدم کن ولی به هر حال خلاص اصل اینه که شما نمیتوانید به هر چیزی برای هر چیزی بذارید بخ... ذهن شما نمیتوانید برای هر چیزی باشه فرقه مهم. این هم در متنشو هم عرض کردم این یک دسته دسته اول پس این پنج روایتی که ما ذکر کردیم به این عنوان من میارم احاد... عرض کردیم احادیس تقدیم مهم بر غیر مهم بود این دسته اول یک دسته دوم حالا اینا که من با استقرار زیادی گشتم اینها رو تک کتوب گشتم پیدا کردم ممکن شما باز پیدا کنید یه رو باید برای اینجا بیارم در ابن ابی حدید از امیر المومنین علیه, علیه السلام نقل کرده که الامرو اقصه رو من انتو ان ان كو... علمه یا تعلمه کلما یحسنو بکا علمه یا من انتعلمه کلما یحسنو ما بک علمه عمر کوتاتر از این که شما هرچی که خوبه یادش بگیری به او یاد بگیری الامرو اقصرو من انت کل ما یحسنو بکا علمو یا یحسنو بک علمو خوبه که شما او رو بدانید فتعلم ال احمم فل شما به کدام بپرداز اون اهم فل به ترتیب یه اولویت رایت کن من و شما الان این را به پایه نقدم میتوانیم بر کل نظام آموزش پرورش شما هم قرار بگیره ابن ابی الهدید شهر نحجل بلاغل جلد بیست حکمت شست سفه 262 الان یه بار مقام معذر رهبری هم خاطر هم هست مثلا گفتن شما در دبیرستان آموزش عربی میدید خب چه نیازی هست که فرض کنیم بگید خلبان معناش چیه؟ کلمه خلبان یاد بدید تا اره رو یاد بدید ما الان اونجا آیا در آموزش عربی هدف چیه؟ هدف اینه که ما صرفا عربی یاد بگیریم هدف اینه که ما بریم مثلا مکالمه عربی با عرب زبانهای امروزی یاد بگیریم خوب خوبه یا ما باید زبان قرآن رو یاد بگیریم که وقتی عدیه رو میخوایم، قرآن رو میخوایم، روایت رو میخوانیم اونا رو بفهمیم خب طبیعتا همه میشه بگیریم نقد بالاتا دیگه الان ما درست علاقه که اخت شدیم با این فضای مجازی موتون انگلیسیون هم جد چشم و همه برحال میخوان مسلط باشن خیلی بحثا اما واقعا شما سرنگشتی حساب کنید یک زمانی که ما دبیرستان چهار ساله داشتیم سه سال راهنمایی چهار سال دبیرستان من سرنگشتی حساب کردم دیدم تقریبا به اندازه یک سال اگر درست نزه باشه تقریم فرما ما انگلیسی یاد کلاس رفتیم حالا روشمند خیلی نبوده فاصله بوده و بله با فرصت خیلی کمتر میشه کلی یاد گرفتیم اما چه حسنی داره آقا من میخوام برم سپور شنبون من این شغل شریف در جامعه اسلامی من چه نیازی دارم انگلیسی یاد بگیرم من میخوام بقال سر کوچه باشم یه آموزشه ضروری به من یاد بدید من کشاورز میخوام باشم گاودار باشم در یه روستایی چرا باید برم انگلیسی وی خود یاد بگیرم خب، البته برنامه این استعماری بوده قبل از زبان انگیسی در ایران ما یه مقداری فرانسه محوریت داشت جالب اموقع در اواخر قاجار من یک متنی یادم دیدم یک کتاب چهی که دن به نقد این آموزش زبان فرانسه پرداخته بود تا چرا عمومی برید؟ برای افتخار کردن که من زبان بلدم نه اگه نیاز یه دارو ترجمه درست کنیم ترجمه بده من مخالف زبان آموزی به طور مطلق نیستم کسی که نیاز داره ده تا زبانیت بگیره یه جاهایی ده تا اما چرا کسی که میخواد دکترای عدوات فارسی بگیره چرا باید انگلیسیش خلاصه کامل باشه میخواد اون کشور مگه خدمت کنه خب حالا ما بیایم در آموزش های دیگه و طبیعتاً اینجا از باب تنقیه منا تب تن این مقوله اهم و مهم و تقدیم اهم بر مهم محدود به آموزش علمم نیست در افعال افعال پراکنده غیر ضروری مگر اینکه عنوانی برای ضرورتش بگیره همینم هم دسته دوم حالا این رو روايت رو من سراف دارم ممکن است دوستان بیشتر باشه دسته سرقوم ترجیح ضروری و غیر ضروری باز از حضرت امیر علی علیه السلام من دارم من اشتغل به غیر ضرورت فوت حوظالک منفعته کسی که به غیر امور ضروریش بپردازه این اشتغالش به امور غیر ضروریش باعث میشه که منفعتش رو این تفید کنه فوت حوظالک منفعته باعث میشی که منفعتش رو از دست بده چون به امور غیر ضروری پرداخته حالا اینم در در هم همون حکم صفحه 156 در قرر الحکم صفحه 243 تصنیف قرر داره صفحه 57 آقا جمال بر هم آقا جمال خانساری در شرح این جلد 2 366 داره خب ای ببخشید این رو شاید من اشتباه نقل کردم ببخشید اینها پاورقی ای بس اون این رای کلایت کل تسال کل شای فقر کلل مهم بود تو همین صفحه بود من اشتباه کردم خب این در همین موارد تسال آدرساشو میشه پیدا کرد دیگه تعجیل بکنیم نخونیم من اشتغله به غیر ضرورت فوت و ظالک منفعته مرحوم آقا جمال خانساری اینجا تعبیر زیبایی دارن از باب تبرک بگیم از باب برکت کلامیشان سریع میخونم میفرما هر که مشغول گردد به غیر ضرورت خود فوت گرداند او را این منفعت او را مراد به ضرورت است که مهم و در کار باشد از ضروریات دنیوی و خیرات اخروی چه همه آنها مهم و در کار است هرچن واجب شرعی نباشد و مراد این است که هر که مشغول شود به غیر آنها این سوال می شود که بعضی از آنها فوت شود او را زیرا امور مهمه در هر وقت آنقدر هست که کسی که خواهد آنها کمایم بقی قیام نماید فرصت زیاده برای نیایی بد پس به قدر آنچه به غیر آنها مشبول گرد ناچار رو از آنها فوت شد این دسته ثوم دسته چار است که یا تک یا بعضی روایتی که ترجیح فر... فریزه بر سنته حدیثی داریم در منلای منلا حضر الفقی زراره از عبی جعفرمان علیه السلام نقل فرموده که لا و آد و سلات و الا من خمسطن ات توهور و الوقت و القبلت و رکوع و سجود سم مقال القراءت و سنت و تشهد و, و سنت و لا و سنت و خب اونجا تعبیر قبلش تعبیر فریزه الان تو اون فقر قبل نداشت ولی از این که فرمودن لات و آد و سلات و الامین خمسطین معلوم میشه که اونا چی هن؟ فریزه است. احتمالا بعد فرمودن که قرائت و تشه و سنت به این قاعده کلی سنت فریزه رو نقض نمیکنه کنه ناقض اونسی یعنی شاید اینجوری بگیم که اگر یه موقع تزاهم بین سنت و فریزه باشه خب اینها ها نمیکنه. نمی کنه یا این تعبیر یا این که بگیم که مثلا فقدان قراعت و فقدان تشهد صحوان اینا سنت و شما فراموش کردی این قراعت و تشهد رو انجام بده چون اینا سنت نماز خراب نمیشه. لا تنگوز و سنت و الفریزت هست چرا؟ تعبیل جمله قبلی اینه که آه موقعی نماز شما خراب میشه و باید اعاده کرد که تحبون رو وقت و قبل و روکو سجود خراب بشه و اعاده سالات فقط از این پنشتاس لا دعا و سلات و الا من خمسه اما قراعت و تشاغت سنته خب این رو من از چه بابوردم یه جاهای این لا تعبض سنت و الفریزت هم ممکنه استفاده اینجوری بشه ممکن استفاده دیگه هم بشه مثلا شما وقت کم دارید چه چیز رو به مجبورت سریع بخانید یا یه مشکلی دارید آیا از این می توانیم استفاده کنیم در تضاهم به این این یا یه وظیفه بیرونی یه وظیفه دیگه از این استفاده بکنیم که خلاصه سنت اگر کنار گذاشته بشه مشکلی نه سنت ما سنه و نبیه معناه سنت در ذهن ما بحث روایته اما در روایات و در اصر پیانبره اینا سنت یعنی ما سنه و نبیه. یعنی ما شرح و نبی با اذن خدایم تحاله سن حدیث مشابه دیگه هم داریم شبیه همین گفته قراعت و تشعوده و تکبیر سنته آخرش هم گفته نقض نمیشه سنت با. سنت فریزه رو نماز واجب رو نقض نمیکنه. حالا اینا تحلیل لایم داره. موم صوق هم فرمودا سنت و فریزه چیه گفتن چیزی که با سنت ثابت میشه حکمی رو بر نمیدار که از طریق کتاب ثابت نمی شود. پس اینجا بحث ما میخوایم می بینیم در بحث تظهمم میشه ازش استفاده بکنیم یا نمیشه بکنیم خب یه مباردی هم هست من بعضی بحثا رو دیگه خیلی حاشیه ارز نمی کنم. دسته پنجم احادیث تقدیم فراز بر نوافل این نزدیک تره. حدیث اول امیر علی علیه السلام می فرماین. لا قربت به نوافل به فراد است اگر نوافل زرر بزنن به فرائز این قربت نداره پس در واقع اگر ما فرق به معنی آم بگیم نوافل و فرائز رو بخوایم مزاهم ببینیم باید فرائز رو به نوافل مقدم کنیم چرا؟ چون که این نوافل وقتی که زرر به فرائز بزنه اصلا قربت آفرین نیست و تقریب الالله نمی نمیکنه لا و به نوافل ازا عذر رد بل فراعز در نحجو البلاقه هست و در اون موارد اویون الهکم هست قرار الهکم هست تصنیف قرار رو اینا برات دارن و البته به, به نقل از نحجو البلاقه وسائل و شیعه داره شیخ خور رامالی داره در فصول مهمم رو و حالا اینا رو کار نداره دیگه من اینا رو سریع تر رد میشم مرحوم آقا جمال خانسالی فرمودن متوفی 11-22 11-122 اضرار به فراعز رو در دو شکل تخویت فراعز و تأخیرش معرفی کرده اما مرحوم میرزان حبیبالله خویی متوفی 1324 شارح نجول بلاغه فرمودن این روایت ناظر به دو صورت ترک فریضه یا نقص در اونه یا حتی بیانگر مثلا ناظر به اینا اعتماد نباشه ناظر حتی بیانگر بطلان نیست بلکه اشاره به اهم بودن آمادگی برای فریزه است درفر اینطوری همorden نیست قربتی به نوافل هرگاه ضرر رسانند به فرایض مراد به فرایض و نوافل فرایض و نوافل شبانه روزی باشد و اینکه هرگاه نوافل آنها ضرر رساند به فرایض آنها مثل اینکه یک باعث تأخیر آنها شده از وقت فضیلت آنها قربتی نیست در گزاردن نوافل در این صورت. یعنی باعث تغرب و نزدیکی به درگاه حق تا حالا نمی شود. بلکه باید ترکت آنها و به فراز پرداخت. و تو خب مثلا نوافل یومیر که ببینیم تا دروکت قبل از نما وقتش خب قبل از نماز زهر بعد از اذان. اون حالا طبیتان جداست دیگه و ممکن است مراد مطلق واجب ها و سنتی ها باشد و اینکه کردن هر سنتی که ضرر رساند به یک واجبی و باعث فوتان شود قربتی نیست در آن باید واجبی را کرد هرچند آن سنتی به سبب آن فوت جارد حالا به بحثا این هم از کسا بزرگواران دیگه دارند کار نداریم در تاثیر این این میرزا وهولله خی در من هاجل بر افی شهر نهجل بلاقت ج ۲۱ صفحه ه پنج شهری دارن من یه یه تکش رو میخوانم الاقرام احتمالاتی ها میگن بعد میگن الاقرام ان یوگال ان کلامو علیسان یادو اللہ علا نفی تقرر سبب فی نبافت ازا ازر رد بل فرز لا علا البدلان و عدم سهر و بین هما فرقون ولیس المقصود انه اتیانا نافلا سار سببا تامن لترکل فریزه قابل نصفی بل المراد ان تحییل لفریزه اهم و حفظ و کمالها الزم فمن نشتغل اللیله به طلاوت القرآن و به نوافل و عطع و نفسه و حتی غلب علیه النوم و فاطع انها فریزت و صوف فلا سوا بله و لا قربته فی نوافله بعضی این تیکش بخیل مهمه بعضی گزرگ قرآن دیدید از این کار میکنن که برای این مشغول عبادت و اینا ممکنه بشن نماز صبحشون خلاص قضا بشه یا مثلا فرض بگیریم احیاب بگیرند یا مثلا اون که رایشتره بحث مثلا ازاد داری نمازشون غذا بشه خب اون دیگه به این تأمین می که ذر نداره روایت دیگه ای دارن می مشابه همین ازا ازررت نوافل ازا ازررت نوافل ازا ازررت نوافل فرائز فرفروها این هم در قرار رول و اون چند تا کتاب تصنیف و ایون الهکم و نهجال بلاقه صفحه 525 ساله و موارد این طوری دارن خدمه شما از کنم آقا برای این زهی لینو بردن فرس های مختلف تفیید وقت فراعز تفیید قدرت انجام فراز تفیید کیفیت فراعز مثل تأخیر وقت فضیلت، تضیف خشوب زوح اقبال قلب خب اینو به هر من موارد کلیه حالا نمیخونم حدیث سوم امان حسن علیه السلام از در رت نوافل و بالفرزه فرفوزوها این عبارت امیر المومن علی علیه السلامه که این رو ابن شعوبه حرانی در توحفه الاقول صفحه 236 و, و, و مجلسی در بهار جل دفت و پنج صفحه 109 ووردن این حدیث سوم این همون بود ازا از ررت نوافل و بلفریضت فرفضوها امرو به ترک فرمودن حدیث چهارم از امیر المومین علی علی این نکه اینشتغلتا به فضائل یه نسخه این فضائل یه نسخه دیگه به قضا این نکه اینشتغلتا به فضائل نوافل ان ادائل فرائزه یوم و فضلن تکسه بهو یا تکب به اگه شما مشغول فضائل نوافل باشی یا به غذا نووافل باشی به جای ادای فرائس این برات فضلی نمیاره اون. فضلی که خلاصه از طریق یک فرزی میاری یک فریزهی میاری که او رو از این طریق داری تضیح میکنی خلاصه این نافله اضافیه یا قضای نافله به شما ضرر میزنه اون فرائزی که از دست میدی اون سودش و سروابش و آوردش خیلی بیشتر بوده که شما تضیحش کردی مرحوم آقا جمال هم یه توضیحاتی داره حالا خوش نداریم این حدیث چهارم حدیث پنجم عبی جفر علیه السلام و عبی عبدالله علیه السلام فرمودن لا حالا اون در شرق اون تحبیر آقا جمالم بخوانم بد نیست به درستی که تو اگر مشغول گردی به های نافله از عدای واجب، خب پس برابری نمی کند فضلی که کسب کنی آن را به فرضی که زایه اساسیان را مراد این است که اشتغال به نوافل را نباید مانع ساخت از پرداختن به فرایز به عنوانی که باعث ترک آنها یا پس افتادن آن را از وقت فضیلت آنها گردد زیرا که زیادتی که آدمی کسب کند، آن را به اعتبار کردن نوافل برابری نمی کند با فریزی که تضییق کرده باشد آن را فوت کرد نمودن آن و ممکن است که زایه کردن فریض شامل ناقص کردن آن نیز باشد هرچند تکه هر بالکلییه نشود. مثل اینکه پس اندزت نماز را به آخروقچه از آوادی ظاهر می شد که آن تضیه نماز است، پس اشتغال به نوافل را باعث تضیه فریزه برین وژ نیز نباید کرد یا پس انداخت از فضیلت یا از وقت فضیلت آن. خب و حالا اینجا یه سوالی هست برای من همیشه است که بزرگوارانی که ای ای خدمت شما از کنم اینو متن خودم دوستان ندارن خدمت شما از ما ای این سوال هست که در رساله ها شاید می نیسند احکام می گن که اگه نماز جماعت بخوانی از نماز اول وقت ترجیح داره نماز اول وقت ترجیح داره حالا اون رو بر جدا مستنداتش رو دید. حدیث پنجم از عبی جعفر علیه السلام و عبی عبدالله علیه السلام فهمدن لا تو سل نافلتن و علیکه فریضتون قد فاتد که حتی تو ادیال فریضت یه نافله با یه فریزهی که فوت شده از شما مقایسته میکنه. میکنه اگه یه فریزهی داری که گردن ته تو فوت شده اونو بنداز جلو نافله نخوان اینم ابن حیون داره در دعایمال اسلام نعمان ابن محمد مغربی ابن حیون متوفی 363 دعایمال اسلام بهار داره از عقاب نوافل یومیه مرحوم نوری در مستدرک داره به نقل از دعائم البته حدیث ششم از ابو جعفر علیه السلام الله لا يقبل نافلتا الا بعد اداء الفراائض ما الان اینجا بحثمون بحث عبادی نیستا از این منظر درین دسته‌بندی کردین چند تایفه کردیم روایت اهم و که من پیدا کردم استقرار کردم حتی اتی نو است رو خیلی تولکش اله جمع و جور من خدمت شما میکنم از شما یاداش میفرمایم ولی تک و تو خیلی به سختی اینا بعدم بگرد پیدا کنی ممکن روایت زیبای دیگه هم شما به طور تسری یا به طور دیگه پیدا کنید حالا اون جایی که عبادیه غیر عبادیه این خیلی ضروریه شما حضرت میفرموجعفر علیه السلام ان الله لا يقبل النافله الا بعد اداء الفرائض و خب حالا ادامهی داره که من نمیخوانم ای بعد این جناب ابن حیوم نعمان خلاصه برداشتیم داره که اگر نماز تنها اگر نماز واجب فوت شد باشه یا شروف فوت باشه نباید نافله رو مقدم کرد و برحال این حکر رو دارن مرحوم علم مجلسی هم ظاهران با او هم پس ما پنج دست روایت رو عرض کردیم یک استراحتی بفرماید من ادامه بحث رو خواهم داشتم الحمدالله رب بلاله